دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن در کوی او گدایی بر خسرووی گزیدن از جان تمع بریدن آسان بود ولی کن از دوستان جانی مشکل توان بریدن خواهم شدن به بستان چون قنچه با دل تنگ وانجا به نیش نامی پیراهنی دریدن گه چون نسیم با گل راز نهفته گفتن گه سر عشق بازی از بل بلند شنیدن بوسیدن لب یار اول زده است مگزا کاخر ملول گردی از دست و لب گزیدن فرصت شمار صحبت که از این دراح منزل چون بگذرین دیگر نتوان به هم رسیدن B beraft حافظ از یاد شاه jejau. یا a bi da schauور